فصل 22. مطمئن بودم هیچ کدام از کارهایی را که در ذهن دارم انجام نمیدهم. نه به روم میروم و نه با پاپ حرف میزنم و نه فردا عصر به دوره مادرم میروم تا سیگار برگ و بادام زمینی کش بروم حتی دیگر قدرت این را نداشتم که به هر کشی بالا فکر کنم تلاش برای گره زدن دوباره نخهای عروسک خیمه شبازی و بالا کشیدن خودم تلاشی شکست خورده بود می دانستم کارم به جایی خواهد کشید که از کینکل یا زومرویلد قرض بگیرم و حتی فرد بویل سادی است که شاید یک سکه پنج مارکی را در هوا نگه می داشت تا برای گرفتنش به هوا بپرم خوشحال می شدم اگر مونیکا زیلفز مرا به قهوه دعوت کند نه به خاطر مونیکا به خاطر یک فنجان قهوه مجانی آذر بودم حتی به بلا بروزن احمق هم تلفن کنم خودم را برایش لوس کنم و به او بگویم که دیگر درباره مبلغ کمکش چیزی نخواهم پرسید و هر مبلغی را با آغوش باز میپذیرم دور نبود روزی که پیش زومرویلد بروم و برایش به شکلی غانه کننده توضیح دهم که پشیمانم و با چشم گوشی باز آماده تشرف به کلیسای کاتولیک شده آن وقت وحشتناکترین اتفاق ممکن میافتاد نمایش آشتی کنان من با ماری و تسوپنر به کارگردانی زمر ولی اگر کاتولیک شوم ممکن است دیگر پدرم کاری برایم نکند به نظر میرسد کاتولیک شدن من برایش وحشتناک ترین اتفاق ممکن باشد باید در این مورد خوب فکر کنم چیزی که میخواستم انتخاب کنم انتخاب بین قرمز و سیاه نبود انتخابی بین قهوهی تیره و سیاه بود انتخاب زغال سنگ یا کلیسا بالاخره من آن چیزی می که آنها مدتهای مدید منتظرش بودند یک مرد پخته مردی اینی که درست قضاوت می کند و آماده است تا در کلوپ مردان اسکات بازی کند هنوز چند شانس دیگر هم داشتم لئو. هنیریش بلن، پدر بزرگ و تسون ریر که شاید بتواند، از من یک گیتاریست رومانتیک بسازد. آن وقت می توانستم بخوانم وقتی باد در گیسوانت بازی می کند، می که مال منی. وقتی این را برای ماری خواندم گوشهایش را گرفت و گفت شعرش زشت و نفرت انگیز است. به عنوان آخرین راه چاره هم می توانم. پیش کمونیست ها بروم و برایشان تمام برنامه‌هایم را که آنها بی برو برگرد همه را ضد سرمایهداری خواهند خواند اجرا کنم. واقعا زمانی به ارفورت رفتم و چند نفر از اعضای شورای فرهنگی حزب را ملاقات کردم. آنها در ایسکا با زرق و برق به پیشوازمان آمدند با دستگل‌های بسیار بزرگ و پشت سر آن در هتل با ماهی غزلالا خاویار، بستنی نیمبند و شامپاین بی‌حساب از ما استقبال گرم بعد از ما پرسیدن دوست داریم کدام بخش شهر را نشانمان دهند من گفتم خیلی دوست دارم جایی را که لوتر از تز دکترایش دفاع کرد ببینم ماری هم گفت شنیده است در ارفورت یک دانشگاه الهیات کاتولیکی وجود دارد و از آنجایی که به زندگی مذهبی منده است دوست دارد این دانشگاه را از نزدیک ببیند آنها حسابی ترش کردند ولی کاری از دستشان ساخته نبود موقعیت ناراحت کننده پیش آمد هم برای انجمن فرهنگی، هم برای آلمان الهی و هم برای ما آلمان الهی فکر کرده بودند ما به این ابلهان مربوطیم و هیچکس حاضر نشد رو راست با ماری حرف بزند. حتی انگامی که او درباره اعتقاد و ایمان با یک پروفسور حرف میزد. او که به شکلی متوجه شده بود ماری و من درست و حسابی عروسی نکرده ایم در جمع از ماری پرسید: شما کاتولیک هستید. ماری سرخ شد و گفت: بله، حتی اگر در گناه دست و پا بزنم، همچنان یک کاتولیک وفادار باقی خواهم ماند. جو بدی بود. دقیقا وقتی فهمیدیم ازدواج نکردن ما برای مسئولان فرهنگی حزب هم خوشایند نیست. وقتی برای صرف قهوه به هتل برگشتیم، یکی از مسئولین گفت: اشکالی از هر جور مرج طلبی خردورشی وجود دارد که او به هیچ وجه نمیتواند آنها را تایید کند. بعد از من پرسید در لایپزیگ و روستوک چه برنامههایی را میخواهم اجرا کنم و اینکه آیا میتوانم کاردینال ورود به بن و جلسه هیئت نظارت را اجرا کنم یا نه هرگز نفهمیدم چگونه از برنامه کاردینال با خبر شده بودند این نمایش را تنها برای خودم تمرین و برای ماری بازی کرده بودم و او از من خواهش کرده بود که آن را جایی اجرا نکنم چون لباس سرخی که کاردینالها بر تن دارند نماد شهیدان راه حق است گفتم نه باید اول تا حدودی با شرایط اجتماعی زندگی در اینجا آشنا شوم ویژگی هنر کمدی این است که موقعیت های واقعی زندگی مردم را به شکلی نشان بدهد طوری که تفاوتی با زندگی اجتماعی آنها نداشته باشد آنجا ننشباتی به شهر بند داشت و نه خبری از هیئت های شورای نظارت و کاردینال ها بود و اجرای چنین برنامه هایی در آنجا جالب به نظر نمیرسید با شنیدن نظر من دچار تشویش شدم یکی که رنگش پریده بود گفت که آنها تصور دیگری از سفر من داشتند گفتم من هم همینطور وحشتناک بود گفتم میتوانم کمی مطالعه کنم و ای مثل جلسه کمیته محلی یا شورای فرهنگی جلسه دارد یا کنگره حزب حیعت رئیسه خود را انتخاب میکند یا ارفورد شهر گل را برایشان اجرا کنم نگفته نماند در اطراف ایستگاه راه آهن همه چیزی بود غیر از گل. در این موقع سرکرده یانها از جایش بلند شد و گفت از نظر او هر گونه تبلیغ علیه طبقه کارگر محکوم است و اجازه نمایش نخواهد داشت. او دیگر رنگ پریده نبود. صورتش رنگ صورت مرده به خود گرفته بود. چند نفر دیگر دست کم این شجاعت را داشتند که لبخندی بزنند. و او گفتم در ای مثل کنگری حزب حیعت رئیس خود را انتخاب می کند تبلیغاتی علیه طبقه کارگر نمی بینم و این اشتباه احمقانه را کردم که کلمه کنگره را به لحجه محلی آنها تلفظ کنم اخ همین مسئله باعث شد که سرکرده رنگ پریده غیرتی شود او چنان با مشت روی میز کوبید که خامه روی که کم به هوا پرتاب شد او فریاد کشید ما در شما اشتباه کردیم اشتباه. گفتم با این حساب فکر کنم وقتش رسیده که چمدانم را ببندم و از اینجا بروم گفت بله می توانید بروید با اولین قطار من اضافه کردم ممکن است بتوانم اسم برنامه جلسه هیئت مدیره را به جلسه ی کمیته ی بخش تغییر دهم چون آنجا تنها در مورد مسائلی تصمیم می گیرند که قبلا در موردشان تصمیم گرفته شده با شنیدن این حرف آنها درست و حسابی بینزاکتی کردند همه از جایشان بلند شدند و از سالن کوچک را ترک کردند بدون اینکه پول قهوه که خورده بودیم را حساب کنند. ماری گریه می و من نزدیک بود به هر کس که دم دستم بیاید کشیده ای بزنم و اغده دلم را خالی کنم. وقتی به ایستگاه رفتیم که با اولین قطار حرکت کنیم نه خبری از باربر بود و نه یک پادو. مجبور شدیم خودمان چمدان را کشان کشان تا قطار ببریم. کاری که از آن متنفرم. خوشبختانه جلوی ایستگاه به یکی از دانشجویان الهیات برخوردیم که صبح ماری با او صحبت کرده بود وقتی ما را دید رنگش سرخ شد ولی چمدان سیاه را از دست ماری گریان گرفت ماری هم در تمام مدت زیر لب به مرد جوان میگفت که خودش را به خاطر ما توی دردسر نیندازد آه وحشتناک بود ما روی هم شش یا هفت ساعت در ارفورت بودیم ولی در همین مدت کوتاه توانستیم اوقات را بر همه هم از دانشجویان علوم دینی و مسئولان فرهنگی حزب تلخ کنیم وقتی در ببرا از قطار پیاده شدیم و به هتلی رفتیم ماری تمام شب را گریه کرد و صبح نامه مفصلی به آن دانشجوی الهیات که به ما کمک کرده بود نوشت ولی ما هرگز نفهمیدیم که نامه به دست او رسید یا نه گمان می کردم آشتی با ماری و تسوفنر آخرین کاری باشد که در زندگی انجام می دهم. ولی اینکه خودم را دست بسته تسلیم آن مردک که متعصب رنگ پریده کنم و برای آنها کاردینال را اجرا کنم واقعا آخرین کاری بود که در زندگی میکنم. من هنوز لئو، آیریش بلن، مونیکا زیلوز، تسونرر و پدر را داشتم همچنین سوپیگر روی اجاق زابین امونز می توانستم با پرستاری از بچه ها کمی پول در بیاورم حاضر بودم تعهد کتفی بدهم که به بچه‌ها تخم مرغ نمیدهم. اینطور که پیداست مادران آلمانی چنین کارهای را تحمل می‌کنند چیزی را که دیگران ارزش واقعی هنر مینامند برای من بی‌ارزش است ولی مسخره کردن هیئت نظارت آن هم در جایی که چنین هیئتی وجود ندارد کار فسی است یک بار مدت‌ها برنامه به نسبت بلندی به نام ژنرال را تمرین کردم بعد از اجرا همه محافل از آن به عنوان برنامه‌ای موفقیت یاد کردند این یعنی آنهایی که باید بخندند خندیدند و آنهایی که باید ناراحت شوند ناراحت شدند وقتی پس از اجرای برنامه با غرور از این موفقیت به اتاقم برگشتم زنی پیر با جسه بسیار کوچک انتظارم را می کشید پس از اجرای برنامه همیشه عصبی هستم و فقط وجود ماری را در اطرافم میتوانم تحمل کنم ولی ماری پیرزن را به اتاق راه داده بود قبل از اینکه در را کامل ببندم شروع به حرف زدن کرد، برایم گفت که شوهر او ژنرال بوده در جنگ کشته شده و قبل از مرگ نامهای برایش نوشته و از او خواسته از پذیرفتن حقوق بازنشستگیش خودداری کند. پیرزن اضافه کرد شما هنوز خیلی جوان هستید ولی سنتان آنقدر هست که بفهمید و از در بیرون رفت. از آن روز به بعد؟ دیگر نتوانستم جنرال را اجرا کنم روزنامههایی که خود را چپ نامند نوشتند که من از واکنش مخالفین ترسیدم و روزنامههایی که خود را راست نامند گفتند من باید متوجه باشم که حالت دست شرقی‌ها شدم روزنامه‌های بیطرف هم نوشتند خودم را از قید هر گونه تعهد آزاد کردم تمامش احمقانه بود من دیگر نمی توانستم این برنامه را اجرا کنم چون باید دائم به با آن پیرزن کوتاه قد فکر می کردم. پیرزنی که شاید بعد از اجرای نمایش همه مسقرهش میکردند. وقتی کاری برایم لذت بخش نباشد انجامش نمی دهم. توضیح دادن این مطلب برای یک روزنامه نگار کار سختی است این جماعت باید همیشه با همه جا بو بکشد و اخبار را با توجه به دیدگاه خودش به شکلی جنجالی مطرح کند از آن گذشته نوع متداول روزنامه‌نگار باید موزی باشد و از بدبختی دیگران لذت ببرد تا هیچ وقت نفهمد که خودش هنرمند نیست و استعداد هنرمند شدن یا ارتباط برقرار کردن با هنرمندان را هم ندارد در چنین مواقعی طبیعی است بو کشیدن اثر خود را از دست میدهد و چیزی که باقی خواهد ماند جنجال و تحریف و مزخرفگویی است آن هم در حضور دختران جوانی که آنقدر بی تجربه و زود باورند که ممکن است هر آدم کسیفی را فقط به این دلیل که در فلان روزنامه ستون و نفوزی دارد ستایش کنند امروزه شکلهای عجیب و ناشناخته‌ای از فحشا وجود دارد که فحشای معمولی در مقایسه با آن کسب شرافتمندانه‌ای به حساب می‌آید. حداقل اینجا در مقابل پول چیزی به آدم می‌دهند. حتی تصور اینکه برای سبک بار شدن خود را تسلیم مهربانی و عشق قابل خرید و فروش کنم برایم ممکن نیست چون پوری در بساط ندارم ماری اما در هتلی در روم شال اسپانیایش را امتحان می تا به عنوان بانوی نخست کاتولیک های آلمان متناسب با مقام و طبقهش به حضور پاپ شرفیاب شود وقتی به بون برگردد از هر فرصتی استفاده میکند تا سفرش به روم را تعریف کند چای می نوشد لبخند میزند در جلسات کمیته شرکت میکند و نمایشگاه های هنر مذهبی راه می اندازد و به دنبال خیاط مناسب می گردد تمام زنانی که در بن به شکل رسمی ازدواج کرده اند به دنبال خیاط مناسب گشته اند. ماری به عنوان بانوی نخست های آلمان با فنجان چای یا گیلاس مشروب در دست میگوید شما کاردینال کوچولو با مزی که قرار است فردا بنایی از یاد بود مریم که کروگر طراحی کرده پرده برداری کند اید؟ اخ به نظر در ایتالیا حتی کاردینال ها هم شوالیه هستند چقدر بامزه است دیگر اصلا نمیتوانستم لنگان لنگان راه بروم سینخیز خودم را به بالکن کشاندم تا کمی هوای وطن استنشاخ کنم آخ، آخ، کمکی نکرد دو ساعت از ورودم به بن گذشته بود و هوای بن اثرش را در تغییر حصهار از دست داده بود یادم آمد که آنها پایبندی ماری به مذهب کاتولیک را مدیون منند ایمان او بهرانهای وحشتناکی را از سر گذراند او سرخورده بود از کینکل و از زومرویلد و مردی چون بلوترد که حتی فرانچسکای قدیس را هم به کفر میکشاند ماری مدتی کلیسا هم نمی رفت و در فکر ازدواج در کلیسا هم نبود او دوچار نوعی لجبازی شده بود برای اولین بار سه سال پس از ترک بون در جلسات گروه شرکت کرد البته آنها همیشه او را دعوت می کردن. به او گفتم سرخوردگی و ناامیدی دلیل موجهی نیست اگر به مذهب کاتولیک اعتقاد دارد هزاران فرد بویل هم نمی توانند ای به ایمانش وارد کنند از آن گذشته امثال تسوفنر هم وجود دارند که هرچند زیاد از حد خوشکست و آدمی نیست که من بپسندم ولی به عنوان یک کاتولیک قبولش دارم مسلم است که کاتولیک های قابل قبول زیادی وجود دارند برایش کشیش‌های را مثال زدم که ازشان را با گوش های خودم شنیده بودم پاپ گری کوپر و الگینس را به یادش آوردم و ماری پاپ یوهنا و تصبح مر را کرد عجیب بود که در این بره ماری حرفی از هاینریش بلند نمی زد به عکس ماری معتقد بود او آدم است و هر وقت از او حرف می زدم دست پاچه می شد. رفتار او باز شد چک کنم که شاید هاینریش سعی کرده خود را به ماری نزدیک کند هیچ وقت از موری در این باره چیزی نپرسیدم ولی شکم قوی بود و وقتی یاد خدمتکارهای ریش میافتادم به او حق میدادم که خودش را به دخترها نزدیک کند تصورش هم حالم را به هم میزد ولی می توانستم درکش کنم همونطور که خیلی از اعمال تهو آوری که در مدرسه شبانه روزی اتفاق میافتاد درک میکردم. یادم آمد که در آن بحران خودم حرف پاپ یوحنا و تسوبتن را پیش کشیدم رفتارم در قبال مذهب کاتولیک منصفانه و بیطرف بود و اشتباه هم همین بود. ایمان ماری چنان طبیعی و بیریا بود که از صمیم قلب میخواستم این طبیعی بودن باقی بماند. اگر خواب بود او را بیدار میکردم که به موقع به کلیسا برود. خیلی وقتها پول تاکسیاش را هم می دادم. زمانی که در مناطق پروتستان نشین بودیم به این طرف و اون طرف تلفن می‌کردم تا برایش جایی پیدا کنم که مراسم کاتولیکی برگزار میشد. او همیشه می‌گفت این کارم به خصوص لطف بزرگی است که در حقش می‌کنم و دستمزدم این بود که باید زیر آن تعهد کتبی لعنتی را امضا کنم که بچه‌ها را به شیوه کاتولیکی کنیم در باره بچه های من خیلی با هم حرف می‌زدیم. من از وجود آنها بسیار خوشحال بودم حتی با آنها حرف می‌زدم بغلشان می‌کردم و تخم مرغ خام توی شیرشان می‌زدم تنها چیزی که مرا ناراحت می‌کرد این بود که ما در هتل زندگی می‌کردیم و در هتل‌ها تنها با بچه‌های پادشاهان و میلیونرها خوشرفتاری می‌کنند و سر بچه‌های دیگران دستکم سر پسر بچه ها فریاد می‌زنند اینجا خانت نیست که هر کاری دوست داری بکنی در این اتهام سه معنی وجود دارد نخست خوشبین که انسان‌ها در خانه خودشان مثل خوک رفتار می‌کنند. دومی که آدم وقتی احساس خوشی و راحتی می‌کند که رفتارش چون خوک باشد و سومین که آدم وقتی بچه است به هیچ وجه نباید احساس خوشی و راحتی بکند. آه دختر بچه ها همیشه این شانس را دارند که به عنوان شیرین بودن مورد توجه دیگران قرار بگیرند و با آنها خوشرفتاری شود ولی پسر بچه ها دست کم در نبود پدر و مادرشان نعرکشان این طرف و آن طرف می دوند. برای آلمانی ها هر پسر بچه بیعدب است صفت بیادب هیچ وقت از پسر بچه ها جدا نمیشود اگر یک نفر به این فکر بیفتد لغاتی که پدر مادرها هنگام صحبت با بچه هایشان به کار میبرند بررسی کند به این نتیجه خواهد رسید که لغاتی که در لغت نامه بیلد به کار رفته در مقایسه با آن چون کتاب لغتنامه برادران گریم است دور نیست زمانی که پدر مادرهای آلمانی با بچه هاشان به زبان همسر کالیک صحبت کنند آه oh, چه عالی، آه oh, چه وحشتناک و گاهی جملاتی مثل روی حرفم حرف نزن یا تو از این مسائل سردر نمیآوری هم به آن اضافه کنند. با ماری حتی درباره لباس بچه‌ها حرف زده بودیم. او طرفدار پالتوهایی به رنگ روشن، بلند و شیک بود و من پالتوی کوتاه را ترجیح می‌دادم. چون تصور می‌کردم بچه با پالتوی بلند و روشن نمی‌تواند توی چاله آب بازی کند در حالی که پالتوی کوتاه برای این کار مناسب است. آوا من دختر بچه تصورش می کردم لباس گرم به تن خواهد داشت با وجود این پاهایش آزاد خواهد بود که اگر سنگی توی چاله اندازد شتک آب تنها پاهایش را کثیف کند یا اگر با یک قوطی حلوی آب از چاله بردارد و آن را کج بگیرد آب کثیف روی پالتویش نریزد اما ماری عقیده داشت که او با یک پالتوی بلند و روشن بیشتر مواظب خواهد بود تا لباسهایش کسیف نشود این مسئله که آیا بچه های ما اجازه دارند که توی چاله آب بازی کنند یا نه هیچوقت میان ما حل نشد ماری همیشه لبخند میزد و از زیر جواب شانه خالی میکرد و میگفت بهتر صبر کنیم تا ببینیم چه پیش میآید اگر ماری از سفنر بچه دار شود نمیتواند پالتوی کوتاهتنشان کند نه پالتوی بلند روشن شیک او باید بچه هایش را بدون پالتو بیرون بفرستد چون ما درباره انواع پالتو به اندازه کافی با هم حرف زده بودیم ما حتی درباره زیر های بلند و کوتاه، لباس زیر جوراب و کفش آنها هم حرف زده بودیم ماری اگر بخواهد احساس فهشا و خیانت نکند باید بگذارد بچه هایش لخت در خیابان های بون بگردند و نمیدونم او به بچه هایش برای خوردن چه میدهد ما درباره تمام غذاها و تمام روش های تغذیه با هم حرف زده بودیم و موافقت کرده بودیم که شکمو بارشان نیاوریم تا مجبور باشیم تمام وقت شیر، فرنی یا حریره توی حلقشان بچپانیم دوست نداشتم بچه ها مجبور باشند. وقتی میدیدم چگونه زابین امانز به دو بچه اولش به خصوص بچه بزرگتر که کار به این فکر عجیب افتاده بود که اسمش را ایدل ترود بگذارد به زور غذا میداد حالم به هم میخورد. درباره مسئله دردناک تخم مرغ کار با ماری به دعوا کشید او مخالف تخم مرغ بود و در میان دعوا گفت که تخم مرغ غذای ثروتمندان است بعد سرخ شد و من مجبور شدم به او دلداری بدهم عادت کرده بودم فقط به این علت که از نسل خانواده شنیری زغال بودم با من طور دیگری رفتار شود و طور دیگری به من نگاه کنند ماری فقط دوبار با تئنه در این باره حرف زد روز اولی که من در آشپزخانه پیش او رفتم و وقتی که درباره تخم مرغ حرف میزدیم. داشتن پدر مادر ثروتمند به خودی خود مشمعز کننده هست. به ویژه وقتی که از این ثروت بهرهی هم نصیبت نشود توی خانه ما به ندرت تخم مرغ پیدا می شود. مادرم تخم مرغ را بی نهایت مزر می دانست. در مورد ادگار وینکن جریان به شکل دیگری مشمع کننده بود او را همه جا به عنوان بچه کارگر معرفی می کردند حتی کشیش هایی بودند که وقتی او را معرفی می کردند می گفتند یک بچه کارگر واقعی و طوری این جمله را می گفتند که انگار می خواستند بگویند ببینید. او به هیچ وقت شاخ ندارد و کاملا باهوش است این یک مسئله نجادی است که کمیته مادر باید به آن توجه کند تنها کسانی که ثروت خانواده ام تغییری در رفتارشان ایجاد نکرد خانواده وینکن و پدر ماری بودند آنها برای اینکه من از خانواده شنیرهای سهامدار زغال سنگ بودم نه تغییرم کردند نتاج افتخار به سرم گذاشت